بسم الله الرحمن به نام خداوند بخشنده مهربان اامن تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است ان السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ بدون شک در آسمان ها و بتمین نشانه های برای آنها که اهل ایمانم وَبِی وَمَا يَبُطْتُ مِنْ دَابْتٍ آيات لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ و همچنین در آفرینش شما با بندگانی که در سراسر زمین منتشر ساخته، نشانه هایی برای جمعیتی که اهد یقینند و من فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الْرِيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْتِنُونَ وانید در آمد و شد شب و روز و رزقی خداوند از آسمان ناظر کرده و با وسیلی آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها نشانه های روشنی برای جمعیتی که اهل تفکرند تلک آیات الله نتنوها علیک بالحق فبا این حدیث بعد الله و آیاته یبمنون اینها آوجات که ما آن را به حق بر تو تلاوت می اگر آنها به این اوجات ایمان نیابرند بکرام سخن بعد سخن خدا به آوجاتش ایمان نیابرند قيل لكل الساكن اتي باي بر هر دروغگويه گناهكار يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لن يسمعها فبشره بعذاب أليم که پیوست آیات الهی را میشنود که بر او تلاوت شود اما از روی سکبر اصرار بر مخالفت دارد گوی اصلا آن را نشنیده است چون این کسی را به عذاب دردناک بشارت ده و اذا علم من آیاتنا شیئن اتخذها هم و اولائی که لهم عذاب مئین وهرگاه هرگاه از بعضی آجات ما آگاه شود، آن را به باد استهدام نیکید برای که آنها عذاب خواب کننده من ورائهم جهنم ولا یعنی عنهم ما کسبو شيئا ولا ما اتخدو من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم و پشت سر آنها دو است و هرگز آنچرا به دست آبرده آنها را از عذاب الافی دهایی ده نمی بخشد و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزیدند و عذاب دردناک برای آنها مین موجه هدایت است و جسد. با کسانی که به آجات پروردگارشان کافر شدند عذاب سخت و دردناک دارند الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون خدابند همان ذاتی که در یارا مسخری شما کرد تا کشتی ها با فرمانش در آن حرکت کنند و بتباونید از پذل او بهره دارید و شال جد شکل نمتشال جش را با جا آبایید. و مسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الأرض جميع من إن في ذلك لا آيات يتفكرون. او آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را راسوی خودش مسخر شما ساخت در این نشانه های مهمی برای کسانی که اهل فکرم قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یغفون ایام الله یجزی قوما بما کانو یکتبون با بگو کسانی را که امید با ایام الله ندارند مورد افع قرار دهد تا خداوند آن روز هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهد من عمل صالحا فلنفته و من اتاء ثم الى ربكم ترجعون کسی که عمل صالحی بجا آورد برای خود بجا جا و کسی که کار بد بز می کند به زیان خود اوست تپس همه شما به سوی پروردگار کن باز می کنید و لقد بنی اسرائیل و رزقناهم من و بفضلناهم علی العالمین ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم و از روجهای فاکیزه و آنها عطا کردیم و آنها را بر جهانیان بطری بخشیدیم و آتینا هم بینات من الامر فمختلفون بعد مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إن رَبَّكَ با از نبوات و شریعت در احکار آنها اختلاف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی و این اختلاف خاطر ستم و بستنیجوی بود، اما پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کنند، ثم جعلناك عل شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هوءسپس تورا بر شریعت و آگین حق قرار دادیم از آن پیروی کن و از هوسهای سرکش کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن انهم لن هم لااییغوان من الله نواشی واییون نابن وال نباب هم والله وال المتین آنها هرگز ننیتبانند تو را در برابر خداوند بیناز کنند و تابش برهانند نشه و فگمان ظالمان یارو یابان یفتی کردیم اما خدا یارو یار و یاور پرهیدگاران است این قرآن با شریعت آسمانی و سایر بینوگی با موجه هدایت و رحمت است برای مردمی که و آن یقین دارند ام حسب الذین اجترحوا سیئات ام نجعلهم كالذین آمنوا و الصالحات سواء محیاب و مماته ساء ما آیا کسانی که مرتکب سیئات شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند قرار می دهیم که حیات و مرگشان یکسان باشد که بد داوری می کنند و الله السماوات والعرض بالحق ولی كل نفس بما و لا يظلمون. و آسمان ها و زمین را به حق آفریده تا هر کس در برابر اعمالی که انجام داده است، جزا داده دا شود و با آنها تتمی نخواهد شد افرأيت من اتخذ الهه و هواه و اضله الله و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بطره غشاوتا فمن یهزیه من بعد الله آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی بر اینکه شایسته هدایت نیست گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده ای افگنده با این حال چه کسی می تواند غیر خدا او را هدایت کند آیا متذکر نمی وقالوا ما هي إلا حاتنا الدنا نموت ونحا وما يهلكنا إلا الدخم وما لهم بذلك من علم إن هم إلا ظنون آن ها گفتند چیزی جز همین زندگی دنیا در کار نیست گروه اسما میمیرند و گروه جای آنها را میگیرند و جز طبیعت و روزگار ما را حلاف نمی آنها به این سخن که می گویند یقین ندارند بلکه تنها گمان بی پایی دارند و اذا تکلا علیم آیاتنا بینات ما کن حجتهم الا انقالتو بی آبا به هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خانده می شود دلیل در برابر آن ندارند جز اینکه که می گویند اگر راست می پدران ما را زنده کنید و بیا برید قل الله رحیه کم ثم یمیت کم ثم یجمع کم الى یوم يجمعكم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نوایی بهبیی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بگو خدابد شما را زنده می کند سپس می میدانند دیگر در روز قیامت که در آن تردیدی نیست جمع آوری می کند و اکثر مردم نمیدانند دانند و تو واللو و یوم تقوم الساعة یومئذی یخسر و حاکمیت آسمان ها برای خدا و روز که قیامت برخامی شود، اهل باطل جیان میپینند و ترى كل امت جافیه كل امت تدعا اليوم تجزون ما کنتم تعملون برانروز هر امتی را میبینی برزامین شسته هر امتی به کتابش خانده میشبد و با آنها میگوگند امروز جزای آن چرا؟ انجام میدادید و شما میدخن ها کتابنا یعنطق علیتون بالحق إن لا تستنسخ ما تنتم عملوا ان كتاب ماك بالحق باب شما سخن میکنه ما آن چرا انجام میدادی مين بيشتي فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين پس اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پروردگار آنها را در رحمت خود وارد میکند این پیروزی بزرگ است واما الذین کفروا أفلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم ونتم قوما مجرمین و اما و کسانی که کافر شدند با آنها گفتن می شود مگر آجات من با شما خوانده نمی شد و شما استکبار کردید و قوم مجرمی بودی. و اذا قیل این الله حق و ساعتنا فيها قلتم ما قلتم ما ندریم الساعة ان إلا ظنن وما نحن ظنا ومانحنننبه هنگامی که گفته می شد بعدۀ خداوند حق است و در قیامت هیچ شکی نیست شما می گفتید ما نمی دانیم قیامت چیست ما تنها در این بوره داریم و به هیچ وجه یقین نداریم لهم و بذارهم سیعیات ما عملوا و حاق به هم ما و سیعیات اعمالشان برای آنها آشکار می شود و انجام آنچه را می کردند بر آنها باقی می کردند و کلل یوم ننساكم کما و با اونها گفته می شود امروز شما را فراموش می کنید و گونه که شما دیدار امروز را فراموش کردید و جای کافی شما دوزخه و هیچ یافری ندارید ذالتون بینکم اتخذتم آیات الله هدوان و غررتون الحیات الدنیا تَلْيَوْمَ لَنْ نَرَى جَوْنًا مِنْهَا وَلَا هُمْ يَسْتَعْتِبُونَ إِن بِخَاطِرِ آنَسَ كَشَمَا أُجَاتَ خُدَارَ بِسُخْنَا كَرْتِي بِسَنْدَغِي دُنْيَا شَمَا رَ مَغْرُوب كَرْت أَمْرُوز أَنْهَ ادُ دَ خَارِج نَمِشُبَنْ وَهَيْچ گُنا اُفْلِ اس آنْهَا قَزِيرُتْنِى سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بنابراین هم دو ستایش مخصوص خدا، پروردگار آسمان ها، و پروردگار زمین، و پر فربرکار همه جهانیان. و لهو کبریا السماوات و الارض، و العزیز و برای اوست کبریا و ازمت در آسمان و زمین، و او عزیز و حکیمه.